إذاعة البيان تقدم لله معسكر الأغلال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت همرتهم من رمينا مثقوبة الصفحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنو مدغني محترم گزارش اخبار دوله اسلامي در روز سه‌شنبه سنه 29م ماه شعبان 1436 هجری برای شما تقدیم کرده می شود. گزارشمان را آغاز میکنه با مهمت ترین های امروز به هلاکت رسانیده شد دها از لشکران صفوی و مسلحان رافیزی و ترکنیده شد زیسکو و تکنیکهای حربیشان را در مناطق گوناگون ولایتی صلاح الدین ترکنیده شد نقلات را در نزد مجموعه مسلح حلق و در نزد لشکر رافضی در ولایت بغداد به هلاکت رسانیده شد و به اسارت گرفته شد دها از لشکر حوالى دتره وفي شلبي هاي مبارك لشکري خلافت در كنون البترا در منطقه قلمون شرقي در ولات دمشق سر اغوز از ولات صلاح الدين لشکران خلافت در جناب شهر بيجي هجوم كردند به قرارگاه لشکري صفوي و مسلحان رافيزي بو اسلحه هاي گوناگون كه در نتيجه كوششه شد 20 از افراد آنها و تا حال معركه ها دوام نكش بين لشکري رحمان و بين بيرون سوزانیده شد عدد از نقلیات مقاومت حربی و چهار نقلیات هامر و دو ماشینه های سبوکرو و بلدازر و سلودار و اینها را بر هدف قرار داده شد با وسیطه سلاح های وزنین و همچنان با غنیمت گرفته شد دو عدد از نقلات حربه و تانک و همچنان به را رسانیده شد سه نفر از لشکریان رافضی با واسطه اسنایپر و هم دو قدردانه تنها برای پروردگار می باشد او در نزدیکی چهارراه حویج حجوم کردن لشکریان خلافت با وسیله های وزنی و سبک برزیزگاه لشکری صفوی و همچنان ترکونیده شد پستگاه لشکری صفوی بعد از در آمدنشان در منطقه ام توس در نزدیکی سنمر که در نتیجه کشته شده است تمام آنانی که در آنجا بودند و همد تنها برای پروردگار است در ویلایتی بغداد لشکریان خلافت بر در آوردند یکی از نقلیات ترکندارو در نزد مجموعه مسلح حلقی و لشکریان صفوی در منطقه شاع که در نتیجه کشته شد و زخمی شد بیش از 20 نفر و هم تنها برای پروردگار است اما در ویلایتی دمشق لشکریان خلافت به قتل رساندند بیش از ده فراد را و زخمی کردند بیش از ده عدد از لشکری سحوالدت و با غنیمت گرفت شد توپ کلبرای 23 در حمله مبارک لشکری خلافت در کوه افاعی در شرقی قلمون در ولایت جنوب بر هدف قرار داده شد قرارگاه و نقلات نظامی سففیرو در منطقه تالعه و الحتاو بمقنبلهای هاون و اصله هوای اسنایپر الله هدف موفق بود هم تنها برای پروردگار است در ولایت دیله تکده شد مینیی ترکنده در پاسگوی شککری صفوی در منطقه عالی علی وب حقدر رسونده شد و زخمی کرده شد چهار نفر از آنها و از جانب دیگری ترکنیده شد یکی از میناهایی ترکنده موسیگل رافیزی را در منطقه تقی ق در نتیجه بهلوقد رسونیده شد و زخمی کرده شد سوور شوگانی آن را و هم دو قدردانی تنها برای پروردگار دیگار مید در ویلتی فراد هو پایمای تحللوفی سالبی الله آنان ان را خار گردات گلوله برون را و ب فضلی الله یگن شخص عسیب دید است. اما در ویلویت برکه لشکران خلافت براتش درآوردم پایگاه لشکر پیکی کرو با اصلیه های وزنی در اطراف شرق جنوبی تیل حمیز از الله مسئلت من نمویم که بر دشمن شکست رو داروارد در ویلویت کرکوک Видelet сп 경찰то правило миг процедитка от гради и definesката за resolня, да за. по което мега е сирен, толкова е вие Кира чужи. В идеят Background следовщие игното изِста, защита от сувегата. Върхите сил integните аупаритоmission за элите. Комъриден за conversions, то е الизирите за мер ways. Сказки изъ Ки дар ам биоан шедест, бър хедеф قрърдаден лешкър нисърири ра ба комбола хаои хаоин. Ама дар велият ракхъ. Нашир کرдест, Иعلами велият ракхъ. Новори ра ба анон Ширбача хаои хилафът. Ки дар ам биоан کرдест, тمرинат ез тедриб гаои велият ракхъ. Ки дар ам, тедриб меконен آخرین اخبار اعلامی از ویلاتی دیمشق اعلامی ویلاتی دیمشق نشر کرده از رسم هایی را که در آن اصورت گرفتن یکی از مرتدین در بیترو در قلمون شرقی و همچنان نشر کرده از رسم هایی را بیانگر یکی از غنیمت های حاصل شده می باشد و همچنان نشر کرده از رسم هایی را که بیانگر زبح کردن یکی از مرتدین با نام عبدالله بشیر انیس و او یکی از مسئولان خزینه با نام جشی الاسلام می باشد در قلمان شرقی و در انتهای گزارش اخباری ما بعضی از زرادات های مهمی امروزه را بیان لکنیم که انوانشان این هاست به حلاکت رسانیده شد ده ها از لشکلان مسلحی رافیزیان صفوی و تركونيده شود زیسگا و تخنیکهای حربی چون را در مناطق گوناگونی ویلایات صلاح الدین بو نقلات ترکنده ترکونیده شود مجموعه مسلح حلق و لشکر الرافزیان رو در ویلایات بغداد لشکری خلافت با قتل رسانیدند بیش از 10 افراد و زخمی کردند از 10 نفر از لشکری صحوی ردترو و بغنیمت گرفتند توپ کالیبر 23 در یک حمله مبارک لشکری در افاعی در و بسم الله الرحمن الرحيم الله در المعسكر الابطالي وقع على العدام توالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبه الصفحاتك <تصفيق> الغربالي الله در المعسكر الابطالي وقع على العدام توالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبه الصفحاتك الغربالي